جلسه چهارم و بعد کسته و حضف رو میدونی بعضی اوقات هم حصف خوف فتحه مشقصه مثلا در اسمی مثل زی و در فعلی مثل یزره و فتحه علامت نصف علف علامت نصب است در کجا؟ اسماه یا علامت نصف است در کسمیه و جمع کسر علامت نصب است در خجار جمع معنیس سالیم حذف نون هم علامت است در افعال خمسه در افعال خمسه هست به نون علامت خود اصلا چون گفتیم فرفتحت و اسم مفعول فتحه علامت نصف است در اسم مفعول مثل زیم و رجال و جمعه مکستر و جمعه مکستر مثل رجال و زیور و همچنین مزاره کدوم مزاره ها؟ مزاره که زمیر مستطب دارن مثل یزربو تزربو ازربو نزربو اما های که آخرشون رقع به ذمه دارن نصفشون میشه به چی؟ مثلا اگر من گفتم انا ازر ب انا ازر بزیدن انا هم اسم مفرد منصوب داریم هم داریم حالا میتونیم بگیم انا ازر بزیدن و رجا نظر و زینم و رجال لاب و رجال ول الف الاسماه ست علامت نسب است در اسماه ست رعی تو عبا رعی تو عبا زرب تو والله عارف علامت است بليه نه است بيروسن نو ان زيدين ان ان ها زين حرام على که انها زینه حرام و نلازه یعنی همانا این دو حرام از بر مرمان تلا و و جمع و جمع مثل ان یا و رعای تو, رعای تو از زندین جمع و ملحوات این هم چی بود؟ کلا و کدا به شرق اضافه شدن به زمین اسنان و اصنتان و سنتان و ملحقات جمع هم اولو اشرونه و دانش ولی کسر تو و همچنین هم کسره به جمع المهندس صاحب در جمع المهندس صاحب خلق اللهو از سماوات ولعرزت یعنید العرزت میشه میشه منصول ولعرزت مفعوله خلق اللهو آفرید خدا از سماواته آسمانها ها را و زمین را بر هر زمین. اما از سماواته میبینید که نسبش به چی اومده؟ و هزف نون و هزف نون فل افعال خمسه. هزف نون علامت هست در افعال خمسه انیزر با انتزر با انیزر بو ها؟ انتظر بین که البته گفتیم اینها در واقع افعال چی هم؟ هستند هستن پذربانه سه تاست دو تاش تصنیه و تصنیه مزکر و مهندنس مخاطب و یک شمد تصنیه مهندنس مخادر دوزید پس علایم اعراب یکیش رو با توضیحون توضیح دادیم علامت را یکیش رو با اکمالون کامل کردیم و دوباره باز توضیح دیگر میدیم میگه علایم الجر سلاسون علایم جر که مخصوص اسمم هست ست. ست. هلی کس را تو یکیش کس است. هست ولیا یکیش یاهه و یکیم ولی فتحه تو فتحه و خب معلومه کسره در اسمهای عادی میاد مثل زید مراد تو با یا در نصنیه ها جمع میاد که جردشون به یا و نونه هم در غیر منصرف میاد که جردش به فتح تو ولی یا و هر فتح فل کس تو فل اسم مفرده مثل زید و رجب مرحل تو به زیده مرد به رجاله ول جمعه مکسره نهی کم جمعه مکسر مرد تو به رجاله مرد به زیوم ول جمعه مکسره هل اینه به شرطی این که اون اسم مفرد و اون جمع مکسر چی باشن؟ منصرف باشن و ایلا اون اسم مفرد اگه مثل احمد باشه اون غیر منصرف شخصه. یه جرلش به کسره و اگر جمع مکسر هم مثل مساجد باشه اون هم باز ول جمع مکسر اما به شرط این که علمان صرفه این فیل اسمی هم افرده ول جمع مکسره علمان صرفه علمان صرفه اسم مفرد به جمع مکسره ول جمع ما در جنو محننس سالم هم زدجه خودش مرر تو به مسلم ها محننس ولیا و یا فلعصمه یا علامت جرد هست در عصمه ستت مرر تو به عبی گلام و عبی آه. و اگر جنو محنس هم مثل مساجد باشه اون هم باز ول و اما به شرط این اسم مفرده ول و, و این اسم مفرد و مفرد ول جمع کسی در جمع مهندس سالم هم در جو خودش مرر به مسلمان ولیا فلعصما سده یا علامت جرد است در اسما سده مرد رو به عبی کرد غلام عبی کرد غلام اضافه شده به عب عب رو جرد غلام و عبی کرد جاهن یعنی غلام پدرتو فلعصما سده ول مسنن و یکی هم مسنن مرر تو به زیده اینه تو به رجلی ول جم جم سالم میگه جم تو به زیدین مرر تو به مؤمنین ول تو فی غیره منصرف در اسم غیره منصرف مثل مرر تو به اح. ما ذا او الذي سميع به ماذا و علا ما علا متا این علامت ها چی بوده علامتان بوده اضافه شده به جزم چی شده علامت ها یعنی دو علامت جزم جزم چند تا علامت داره؟ دو, دو. یکی از سکون سکون از سکون دیگری وله هست یکیش ساکم میکنه یکیش هست خب معلومه ساکم میکنه در اسمایی که فیلهایی که صحیحه مثل یزره لم یزره حصف میکنه می‌کنه، گای اوقات حصف حرف رو می‌کنه در معطلات که ناقص و گای اوقات هم حصف نونه عوض رف رو می‌کنه، مثل هم یعظره می‌گه فسکون و فعل مزاره صحیح هم. سکون در فعل مزاره در حالی که صحیح باشه صحیح هم صحیح نحوی منظورشه، یعنی چی؟ یعنی حرف آخرش علم نباشه سعی منظور سعی نحویه سعی صرفی نیست بهداری خونه بهدارتون هسته نیست سعی نحویه اونیه که آخرش سعی نیست. با اول دو و سه با وسط کاری ولعصف هزم فیه معتلن حزم در همین فیل و مزاره هست در حالی که معتل باشه حسب در فعل مزاره پیدا میشه در حالی که معتل بازم معتل معتل نحوی اون که آخرش شرفه این هست لذا مثال میزنیم لم یرمه لم یرمه لم يدو. لم یخ یکی واف بود آخرش لم یدعو یکی یا بوده لم يرمه. کی علف بوده لم یخ چاد واسه نه افعل ده خمسه و حسب واس پیدا میشه در افعال خمسه ما که گفتیم در واقع افعال خمسه فايده تون اینو خوندیم در کتاب مداری مفصل اینم فايده یقدر الاعراب یقدر الاعراب یعنی چی یعنی بعضی جائرا چی میشه؟ تقدیریه. ها در ان اعراب فی خمسۃ مواضع تقدیر میشود اعراب در 5 موضع در اعراب و فی خمسۃ موازه حکم اول مشهور همانطور که این مشهور مشهور اینه که اعراب در چند موضع مقدره پنج موزه مشهور بیشتر هم. و هم مشهور و مطلقای این یعنی فیوقدر و اعراب و مطلقه. یعنی اعراب مطلق. یعنی تقدیر میشه اعراب به طور مطلق یعنی چه رفع چه نصب چه جنب. یعنی هر ستا هر سه اعراب تقدیر میشه فیقد ضروره اعرابو اعربا مطلقاً تقدیراً و یقدرون اعراب و تقدیرن اون بقیه افتاد یعنی تقدیر میشود اعراب تقدیر شدنی مطلق یعنی شرطی نداره همه اعراب تقدیر میشود در کجا؟ فیل اسم مقصور در اسم مقصور مثل روزا اونی که آخرش علف مقصوره هستش یعنی علفی که بعدش همزه کموسا دکمان این جایی که اعراب تقدیر میشه دو جاست فلموزاف الان اونی که اضافه شده به سویلی یا که گفتیم این وقتی اضافه شد به سویلی یا نظر اضافه شد به یا چی میشه؟ محل اعراب به وسیله حرکه مناسب با یا اشغال میشه دیگه جایی برای آوردن اعراب لذا در اولی میگیم جا موسا رعی و موسا مرر به موسا در دومیم هم میگیم جا اغلامی رعی تو غلامی مرر به امکان نداره میم رو حرکه بدیم چرا؟ چون میم خودش یک کسره گرفته به مناسبت ول الان که غلاب و علم المتصل بهی نون و غیر مباشرده مزاره ای که متصل شده باشه به اون نون تحکیل نون تحکیلی که مباشر نیست چون اگه مباشر باشه چی میشه؟ مباشر باشه یعنی نون تحکیل مستن به نون مقنی میشه فعل مزاره در دو صورت مقنی است همین کتاب و کتاب ادایی <تصفيق> <تصفيق> که فعل مزاره اگر به اون نون مهننست یا نون تحکیل مباشر چسبید میشه چی؟ و نون تحکید مباشر هم اونیه که نون مستقیمن به چسبه به لامول و, و چیزی بین اونها لفزن یا تقدیرن فاصله اینه باید میکرد اون جزبه مزاره که متصف باشه به اون نون تحکید غیر مباشر مثل یزربانه اینه حل یزربانه الانی حل یزربانه را حسیده حل یزربان نون تحکید اومده چی شده؟ حل یزربان نه نه بعد اجتماع سراسه نونات شده یه دونه نونه نون که نون اعرامی بوده چی شده؟ عرصه. پس الان یزربان نه حل یزربان نه منصوب الان مرفوع است اما به چی مرفوع است بگید به نور بقدر که به خاطر اجتماع سلاسه ای چی شده؟ <تصفيق> حالا فرض کنیم که این حل یزربانه بشه لیزربانه مجزون بشه لامه هم رو قایب جزمش میشه چی؟ جذبش هم میشه؟ تقدیری به حسب همون نون مقدر نصف اگر پیدا کنه نصف اگر پیدا کنه و منصوب بشه نصفش میشه چی؟ تقدیری به همون نونه پس اگر مرفوع باشه رفعش به چیه؟ به وجود نون مقدر اگر منصوب یا مجرور باشد که منصوب یا مجزوم باشد نسب و جزمش به چیه به حذف نونه به حذف نونه مثلا جون پس علایان اعراب رفت در این تقدیری است به تقدیر نون اعراب جزم در این تقدیری است به تقدیر حذف نون اعراب نصف هم در این تغدیری است به تقدیره حذف درستو یزربان این سه تا اعرابشون چه جوری بود سقرص موسی غلامی یزربان تقدیری بود مطلق یعنی هر سه ارا در دو اولی چون اسم بودن رفع و نصب و جر در سومی چون فعل بود رفع و نصب و جر درست شد. و رفعا و جررا فعل منقوص و جرن فرمان منقوص رفع و جرش در تقدیر است در اسم منقوص رفع و جر رفع و جرش در تقدیر است در اسم رفع او در حالت رفعی میگیم چی زن رفعش به چی تقدیر است حذف زمه موقع به رفت اشتفش به زنبه میده مقدر اون زنبه روی چی بوده؟ روی یا یاش هم در تقدیر حالا اگر مثلا به جای جا قازم بگیم جا غازی. دیگه محل اعراب در تقدیر نیست ولکه چی در تقدیره؟ فقط خود حرکه, خود حرکه اعرابی در تقدیر. محل اعرابی در تقدیر اما نصفش ظاهر میشه چرا چون فتحه و یا سقیل رعی تو غا زیان یا رعی تو الغا زیان رعی تو غا باز تغییلیه چون کسره و یا سقیل مرر تو به غا زن مرر تو به مرر تو خب اینم یک و رفعا و رفع و نصفش در تقدیره اما جزمش چی میشه ظاهر میشه کجا و رفعا و نصفن فرموزار علم معتله مزاره که که مطلبه علفه. رفتش میشه به زنبه مقدر زیدان یخشا الان یخشا چیه؟ یخ شایو بوده دیگه زنبه برش یخدی نزد بگیم لن یخشا زیدان لن یخشا زهیده. لن باید فتحه بده دیگه در اسمی در این فهر مثل لنی از ربن ولی فتحه ظاهر نشده چرا چون علف قبول هرکه؟ اما جزمش ظاهر میشه های گفتید؟ جزمش به چیه؟ به هز فرفه؟ جزمش ظاهر میشه پس رفعش به زنبه نصفش به فتحه مقدر زیرا علف قبول هره که نمی اما جزمش به حسب حرف ورفعاً و نصفاً فلموزاره معتلبه نهره که یهیه آن ما یخشا می سازیم شوی یهیه هم می سازیم یهیه زنی زنده می شود اینم یک مول تا حالا چند مولت سه مورد اون بود رفعن و جدن یه مورد چهار مورد رفعن و نصفان مورد چند تا شد؟ پنج شد؟ و رفعن فر مزارع معتله رفعن فر مزارع چند در و معتله به یا یدعو یرمی کیت <کا> او و یل یعنی. رفعش در تقدیره در هر دو تا چرا چون زنبه بر واو و یا صغیر نمینذسته رفعش در تقدیره زنه نصفش دوال میشه چون فتحه بر واو و یا صغیر نیست انید او و ان یار میه جزمش هم ظاهر میشه به اسم فاعل نمیت او لم یار چندش تو حالا شش. و جمع مزکر سالم المزافه الا یایل متکلم این هم یادتونه خوندیم جمع مزکر سالمی که اضافه شده باشه به سویدار متکلم در این هم رفعش میشه در تقدیر به واو مقدر مسلمون رو اضافه کردیم به یا شد چی شد؟ نون افتاد شد مسلم مو بعد واو یا در شبه یک کلمه چون و مزاف مزافی نیلک کل کلمته ببایدن در شبه یک کلمه جمع شده بود واف رو قلبه به یا کردیم یا رو در یا ادغام کردیم چون مسلم میگه. به جهت این که یابر نگرده دوباره به واف و مناسب به ادعا بشه با یا زنبه تبدیل به کسه شدیم چون مسلم میگه. جا هم مسلمی ها. این در حالت رفعی وافش دیگه وجود نداره اما نصب جررش به یاست نصب جررش درسته مسلمی رو اضافه کنیم به یا نون میافته یا یا یا میشه شون مسلمی دیم یا علامت اعراب بود الان هم وجود یعنی در مسلمیهی که مرفوعه یا علامت اعراب نیست واقع باید علامت اعراب باشه و در طرف اما در مسلمیه که منصور و یا علامت اعراب بوده و الان هم این هم موردش چندام شد؟ هفته بچه رو گفتش که یعبت در اعرابی خمسط موازعه هم. هم خمسط موازعه درسته هم تو بعضی کتاب ها سبعت موازعه است کتابی داریم که سبعت موازعه باشم؟ تو بعضی کتاب هستی سبعت موازعه اگر اون مطلقا رو سه مورد حساب کنی میشه چند تا 7. ولی اگر اون مطلقا رو یه مورد حساب کنیم تقدیر اون مطلقا بشه یه مورد بعد رفعن و جرن میشه دوتا تا رفعن و نصبن میشه سه تا رفعن خالی میشه چهار تا مشخصه مطلقا رو یک حساب کنید یک رفعن و جرن میشه چند تا دو تا درست شد. بعد رفعن خالی سه تا رفعن و نسبن میشه چهار تا باز کم بیارم جمع مزاکر ساله هم که هم رو رفعن میشه پس یه کار دیگه بکنی مطلقان یکی سا رفعن و جرن در غازم یکی میشه دوتا رفعن و نصبن سه تا درست شد رفعن خودش چند قسم میشه؟ دو قسم میشه. میشه چند تا؟ بمیشتار. با, ایشه. با, ایشه. با ایشه. دو میشه. 5 تا درست دو میشه. 5 میشه تا اما اگر از اول بخواییم اقسام رو حساب کنیم. میشه چند تا؟ هفتا. اینکه در اون هفتا روییم. شد؟ این همماله. حدیقه اول کتاب ما تمام شده. دو فیما یا تعلق و بل حدیقه ای در خصوص چیزهاییست که تعلق دارد ادبار دارد به چی؟ اسما در خصوص اسم الحدیقت و ثانیت و فیما یا تعلق و بل اسما الاسما این اشفه هل حرفه فمبنی بیا میگه بی؟ بی فقط حرفه دیومسته ادایه نه میگه فعل ماضی و فعل هم هم اگه شباهت برسونه میشه مبنی اون نیست الاسم این اشبهل حرفف هم مبنیه اسم اگه شباهت به حرف برساند پس مبنیست چند دا شباهت رو اونجا گفتیم شباهت لفظی رو گفتیم شباهت افتغاری رو گفتیم و شباهت معنی سه تا رو اونجا خدمت رو ان اشبه على عرفه فهمك و الا و اللا یعنی, یعنی اگر شباهت ندوش شباهت به اخت و یعنی فحو ما اون اسم میشه چی و اوروات و ابواب اسماء چند قسم اسماء المورد احمد حالا اسمهای مورب رو یکی یکی داره برای تو میخواد خوب گوش کنید مارو که از اینجا بودت مورسه هستید اله اول اول مایرد و مرفوعن لا غیرو مایرد و مرفوعن لا غیرو اسمهای موربی که همیشه مرفوعن و غیر مرفوع دیده <تصفح> مایل دو مرفوهند لاکه من همیشه دو مرفوهند لاکه و اون با اون چهار چهار دست نست که همیشه و ما رفت به اعراب و جهاز و هم اول و الفائل فائل از باشه چیه؟ کل فائلن حال <تصفح> اول و الفائل. میگه مالا فاقر رو تعریف کنیم میگه وحوه ما اصن در الیه الامل و فیه قائمان بهیم وحوه ما اون فاقر ما چیزیست که اصن در الیه الامل و فیه اصناد داره میشه به سوی او یه به سوی این فاقر عامل فاعل اونی که عامل است در خود این فاعل اونی که این فاعلش کارش کرده رفت پیش رفت عامل در اون قائما به و در حالی که این عامل قائم است به این فاعل قوام و هستی خودش رو هم به وسیله این فاعل به دست می اون فعل حدثه و وجود و قوام خودش رو به وسیله این فائل به دست کنید ببینید فائل رو چقدر تشنگ منعا کرد فائل دو قسمه یک قسمش اونیه که صدور فیل ازش دورت میگیره مثل زرب که زیب که زی از او ضرب چه شده ساده شد یک قسم دیگه هست که زرب از او ساده نمیشه هیچی از هاش ساده نشده بلکه چیزی بر او واقع شده مثل ماته مات زید. ماته زیدون زید فائل ماته از جهت صدور بگید ماته اومده تا زید خودشو برداشته برداشت ماته زیدون پس بعدی تعریفی بکنیم که شامل هر دو قسم بشه لذا تو کتاب صرفه کتاب همسله ها یادتونه گفت <vein> الفاعل ماصدرهن هن ف من دنبالش یه زدم گفتم او قام بهن یا اتیام پیدا کردن که شامل هر دو قسم اینجا الان شامل هر دو قسم است ما اصل ده دهی دهیله عامل آنچه که اسناد داده شده به سوی او عامل در اون اسناد داده شده به سوی او عامل در اون. اما به شرطی که اون عامل قائما به اون عامل قائمه به این هم باشه و هستی خودش رو به این هم گرفته باشه حالا یا از جهت صدور یا از جهت درسته؟, درسته؟ اگر این قائما به رو نمی گفت اون تیکه اول هو ما اسن دلیله العامل فی شامل نایفائرام میشو چون نایفائرام اصناد داده میشه به سوی چیزی که آمده در اما قائمه به نایب فایل نیست واقعه بر نایب فایل نایب فایل مفغوله در معنی قائمه بر او؟ از این قائمه به دو سه کار میکنه یکی که نایب فایل رو از تعریف خارج میکنه و دیگری اینکه که به دو قسم صدوری و وقوعیش رو قیامیش رو چیه؟ قال من حالا فایل چند جوره میگه وقوه ظاهر و مزمنون فایل یه قسمش اسم ظاهره. ذره و ذره گاهی اوقات هم زمیره مثل ازره زمیر انته دارش مستدره و زمیره ظاهر زمیر باشه یا زمیر مستدره بارز باشه یا مستدره وقوه و مزمن و از ظاهر و ظاهرون اونجایی که فایل اسم ظاهره ظاهره اصلا معلومه دیگه اتیاز به گفتن ما و از ظاهر و ظاهرون درسته؟ نیزه زرب از ایدون الله الله فایل و از ظاهر و ظاهرون اما مصمر چی؟ میگه اونجایی که فائل زمیره بارز اون و مستطرون بارز هست یا مستطر بارز اونیه که به گوش شنیده میشه و به چشم هم میره میشه زمیره اینطوریه بارز مستتر اونیه که برخلافی نه با گوش شنیده میشه و نه با چشمی مستطر حالا خود مستطر هم دو جوره گاهی اوقات باجبه گاهی اوقات او مستطرون ولی استطار یجبو استطار واجب است یعنی چی؟ یعنی زمیر مستتر مستطر واجب است در چند جا حالا اگر ما استتارهای واجب رو یاد بگیریم برگیش میشه چی؟ استطاره؟ ول استطار یجبو فل فل استطار واجب است در فل ما استتار واجب در وصف بگیر اسم فائل اسم مفعول و تو با ای اینایی که زمیر دارن هیچ کدومشون استتار واجب ندارن پس استتار واجب اول این شرطش چیه؟ این در باشه در غیر پیدا. فیلم بیدا. دیگه بله استتار و یجب و فی ستت موازه در چند جا؟ شش. در شش جا میگه استطار واجب 23 تطور محبوب یک فعلور و عمر در واحد مزکر اولا یه نکته دوبا میم بگیم خدمتون که زمیری که مستتر میشه حتما باید زمیر مرفوع باشه زمیر منصوب یا مجرور مستتر نمیشه پس زمیر مرفوع مستطر میشه و زمیر مرفوح هم در فعل مستطر میشه در غیر فعل اولیش فعل لعمر لواهد مزکر فعل ام برای واهد فعل ام برای واهد مزکر مثل چی؟ ازره ازره چی دورش مستطره؟ ضمير انت درش مستتر به استتاره اتوجال وجوبي ان چی ها کل بیسو یعنی هیچ وقت و در هیچ شرایطی نمیتونه غیر این زمیر فاعل اون یعنی اسم ظاهر در این دنیای به وجود بیاد فاعل او فعل و عمل ان واحد مسعط یت و المضارع و فعل مزاره همه مقدوب به تای خطاب یکم فعل مزاره ای که شروع شده با تای خطاب خب فعل مزاره خیلی از تزرب اون با تای خطاب شده میشن بودیم هاش یه تذرب و تذربانه تذربونه تذربانه تذربانه که نیست اون هنسون مقبابه تذربینه تذربانه نه. اینا هم که نیست آه نباید بارزن فقط چی؟ بیگه لی واحد از فعل المزاره المبدوب به تای خطاب لی فعل مزاره ای که شروع شده باشه با تای خطاب برای واحد این هم زمین انتا درش مستقره به استقرار مثل چی؟ حضر او به همزته یا فعل المزاره المبدوب به دل همزته دل همزته به بلحمزت جای بیتا فعل مزاره که با همزه شروع شده باشه متکلمه وقته حضره با هرموستانی او به نون باز عطفه به جای بتاه فعل مزاره ای که شروع شده باشه با این چهار مورد مواردی که صد در صد فعل مزاره درش چیه وجوغن دارای زمینه و هیچ کجا احتمال ای که چی؟ اسم ظاهری بیاد. فاید بشه پنجم مورد میگه مورد پنجم فعل و استثناء خوندیم لیسه و لایکونه و خلاب و عداب و هاشاید فعل استثناء فعل استثناء فعل استثناء چند هست؟ پنجد هست لیسه لایکونو، خلاب عدا ماشا مثل جا القوم لیس زیدن یا لایکونو زیدن یا هاشا خلا عدا زیدن معناش این چی؟ یعنی آمدن قوم به استثنای زید الان لئیسه و لایکونه یه ضمیر و هوه در اسمشونه لئیسه و یه ضمیر و هوه در اسمشونه اما خلا و عدا و هاشا یه ضمیر و هوه مستطر چیه؟ فائلشونه چون لئیسه و لایکونه ن اسم میخوان اما خلا و عدا و هاشا چی میخوان فائل بخواید مشخص؟ فیلول ببینید با اون تعریفی که ما برای چی کردیم مستطر وجودی کردیم اینها دارای مستطر وجودی بگیر نیستن چرا؟ چون لعیسه و در این یه که زمیر میشه چی؟ میشه اسم او و خلاوه هاشان در این یه که چی میشه؟ ش مستتر میشه و اگر در غیر است ثاب کار برن چیه اسم ظاهر مییم ل الله به زننا ما تعریفی که کردیم این بود که نتوانیم اسم ظاهر جایون زمیر بله در این یه مورد نمیشه اما اما در چی؟ در بقیه موارد لعی ساولای میشه اما اذرت رو شما در هر کجا پیدا کنید یا تذریبون رو در هر شرایطی پیدا کنید غیر از زمین چیزی دیگه فایلش نیست یک بعدی فعل و به نه ترجم فعل ترجم چند فعل ترجم چند تا بود؟ دو تا دیگه یکی ما اف یکی اف به اینجا ما اف ال نظر داره ما اف ال رو نظر. چرا تو اف به باش پای زاد است و او هو احن به زدن احسن به زدن احسن یا اسم بهم و افسر که تو قول داریم اسم بهم؟ اون با زائده اون همچیه زمین و هم فاعل اسمه احسن بزیدن چی فاعل احسنه ز اون با چیه زائد است اونجا اسم ظاهر فاعله اما در ما احسن از زیدن ما رو گفتیم مبتدا بیادتونه ترکیب کردیم احسنفه زمین و هم مستتر چیه فایلشه ها زمین و هم مستتره فائلشه و زیدن مفغولشه این جمله خبر ماست و اون زمین رو و هم رابطه شه درسته؟ و هیچ کجا در احسن در فیل تعجب شما نمیبینید که احسنه فائلش چیز دیگه بشه فائلش همیشه زمینه بله, احسن در تعجب در بله احسنه در تحجب فائلش زمینه ولی همه احسنا ما میگیم احسنتر فائلش میشه چی؟ ذامیر و بارس می بگیم احسن از زیدون یعنی زید کار نیک کرد جو جسمه بله در یک خصوص فعل تعجب اینطوره که زمین و اوله قبل ذالک دقیق و ملحق شده به این شش یعنی یه جای دیگه هم گفتن ملحق شده در زیدون قامم زیدون مبتدا قامه چیه خبرشه زیدون یقومو زید مبتدا یقومو چیه؟ خبرشه بعد در قامه و یقومو یه زمین روحبه چیه؟ مستطف و چیه اون زمین این زمین هو بیرون بیا؟ بگید چرا؟ چون قانون اینه تا جایی که میشود تا جایی که میشه مقدر آورد ها؟ مظهر بگی ظاهر نمید. خب اینجا نمیشه قامه رو بیاریم مثل بیرون بیاریم اون هوب بیرون نمید یقوم هم هم ولی قامه و یقوم ها زمیر و تو اینجایی که خبر واقع شدن بیرون نمیاد در جای دیگه ممکنه زمین اصلا فایلش بگی مثلا این موردم قابله خلاصه ای کلام اینه این سه موردی رو که آخر سر گفت در هر هو هوه شده زمیر وجوبی و ما هوایی که زمیر وجوبی بشه بگید نداریم. قبول و ما یزحرفی به از آزن موازه سواله یه نفر میگه مگر نگفتی اینا استتارشون استتاری چیه؟ وجوبیه میگه بله میگه بچه رو بعضی موقع ظاهر شده میگم کجا؟ میگه و آنچه ظاهر میشه در بعضی از این موازه مثل این مثال که اقوم و انا اقوم و انا از انت تو قرآن داریم اسکن کن انتا و از میگه این اقوم و انا رو نگوه انا فایل اقومه است بلکه رو گوه اقومه فیل زمیر انا وجودی حجوبی چی؟ فایلش انا تحکید برا اون انای داخله حقومه مثل که بگم زدم من الان زدم من زدم اون میم فایلش زمین متصف درسته؟ و اون من چی میشه؟ تحکیل میشه این هم همون دو حقومه انه فتحکیدون لفایل المستطر تحکید هست برا فایل مستطر وجوبی مثل چیه؟ مثل قمت تو انه قومتو تو خوب معلومه معلوم که ما دو تا فاعل نداریم پس قم تو چی فایده تا اون انا چیه تاکید این تاست و اون انا فایل دیگه نیست چون ما دو تا نداریم مثلا جلسه پنجم